اثر آبودین بالله من الشیطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلّى الله على سيدنا ونبينا أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى و محمد وآله طیبین الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الآن إلى قيام يوم الدين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بلایت أمير المؤمنين عليه السلام والأئمة المعصومين عليهم السلام به ده پیشگاه مولانا و مقتدانا صاحب الاسر و الزمان و جهت خوشنودی حضرتشون و تعجیل فرجشون صلباتی تقدیم کنیم اللهم صل اللهم محمد آه. و آل محمد و عجل فرج محمد پیرامون جایگاه امام شناسی و جایگاه امام معصوم علیه السلام بود و فلجمله عرض شد که امامت و امامشناسی با یک نگاه کلامی محدود به یه حوزه خاصیه. اثبات امامت و تدبیر جامعه و حفظ دین و شریعت و مجری احکام بودن و حالا اسمت و فضائلی هم فلجمله. خب این یک نگاه و عرض کردیم نگاه دیگری هم به عنوان مکمل این نگاه نه در قبال این نگاه. مکمل این نگاه و در واقع مستدرکات بحث امام شناسیه که اینا تکمیل میکنه و این مباحث اگر مهمتر نباشه قطعا ارزشش کمتر نیست چون امام محسوم قرار نیست به عنوان یک موجود خیلی قانونی و خیلی خشک و خیلی حالا به ماشینی نگاه کنیم انگار یک مدیر جامعه و مدبر جامعه خیلی قانونمند و خیلی خوشگو خیلی دستوری و فرمانی و رابطه رابطه مافوق با مادون باشه و رابطه ارباب و رعیت نه دو تا روایت از آقا علی ابن مصرزا تا به حال مباحث محور بحث بوده یکی روایت معروف و في الافق كالشمس لا تنول ايدي وال ابصار كالشمس تدا به هيثي كلاتنال اليدي وال ابصار امام رو باش خورشید وقتی مباحث اولی امامت را ازت مطرح فرمودن تشبیح کردن به خورشید طالع و فراتر از درسترس ابسار حتی ایدی و الابسار لاتنال ایدی و الابسار از اونجا گریز زدن به مقامه های ماورائی امام و بعد نتیجه گرفتن که خلق نمیتونن این امام رو دربارش نظر بدن پس اختیار کردن امام به دست مردم نیست در واقع هر ست این اندیشه باطل قیلشیی کویده بشه و نقد بشه که امامت با نصد الهیه خدا باید امام رو تعیین کنه و خدا امام شناسه. این در دسترس مردم نیست و با رأی مردم و با عقل مردم قابل تشخیص نیست. این صفات ای که در امام محسوم اضافه کردن به اون صفات اولیه. روایت دومی از آقا امام رضا علیه السلام هم بود به عنوان علامات الامام که مرحوم صدوق رضوان الله علیه ذکر کردن در ما حضور ما به دیگه در این روایت هم به عنوان علامت چیزهایی اومده که اصلا گاهی فکر نمی کنیم اینا هم علامت امام باشه اشفق بودن امام نسبت به امتش بیشتر از پدر و مادرش اشفقا علیهم من آبائهم و امهاتهم این هم به عنوان علامت الامام اومده در روایت بعد از جمله اولا بهم من انفاسهم که اختباسی از النبی اولا بالمؤمنین من انفاسهم اولا بکن من انفاسکم ملست اولا بکم من انفاسه کم از اون فضا امام ولایت بر انفاس داره این یکی از شاخص در شاخص های پایانی بعدش داره اشفق علیهم من آباهم و امهاتهم که اصلا اگه این روایت نبود کسی فکر نمی کرد که مهربون تر بودن از پدر و مادر هم جز علامت های امام وقتی می این جز علامت های یعنی اگر کسی بیاد بی رحم باشه نمیتونه امام باشه. این خیلی مهمه. یعنی این با ما شاخص داره معرفی میشه. خب ما اینا رو بگیم اینا نه نگفتن. علماء کلام اینا رو نگفتن. خب حیطه اون نبوده. در صدد اثبات مباحث دیگه بودن به اندازه همون مباحث برهان و استرلال جمعالی کردن و کردن. و یا حتی ممکنه غفلتی هم صورت گرفته باشه. حالا معصوم که نیستن که حال بحث امام شناسی بدون این مباحث بحث کامل و پخته ای نمیشه و تأثیری که این صفات امام معصوم در نفوس امتش میگذاره تأثیریه که بدون این جهاد به دست نمیاد اصلا رعیتی که ارزقه میخواد فدایی اربابش باشه باید این صفات رو ببینه در امامش مهربانی او رو باید شفقت او رو والد بودن او مهربان بودن او اخ شقیق او امول براته ولد, ولد سقیر او اینا باید مشهود بشه در امام معصوم تا رابطه از رابطه فرمان روا و رعیت ارباب رعیت به رابطه پدری و فرزندی هم تبدیل بشه و جالب این که هر دوتا حفظ میشه که یه مثالی عرش کردیم مثال مستند در جلسه قبلی مرحوم محدث جزائری میگه ما شوخی های النامه مجلسی رو میدیدیم با ما شوخی میکرد مذاه میکرد با می این که شاگردش بودیم خیلی اونس میگرفت مذاه میکرد. در اینال اون حیبتش سر جاش بود. باز هر دفعه که میرفتیم به خدمتش اون حیبتش ما رو میگرفت. حیبت استادی حیعت علم شیخ الاسلامیش. عالم بودنش. اهل بیتی بودنش. جایگاه علم مجلسی رزوانه. این منافاتی نداره که رضا اصلا یکی از صفات امیران معنین دعابه است. و یکی از ایرادهایی که قاسب دوم نسبت به امیر علی علیه ارسلام مطرح میکنه صفات دعابه است که خلیفه باید جدی باشه و او اهل شوخی و مزاحه اصلا جز صفات مؤمنه مؤمن مؤمنین الا ویکون و فیه دعابه خود روایت هم سارگه دعابه چی آقا؟ المذاه اونتا مزاح سالم شوخی سالم بلا رفسن به تعبیر بزرزبایات که مومن شوخی میکنه بلا رفت شوخی رکیگ و زشت و اینا نه از حرام خب اینم میشه جز خصائص امام معصوم علیه السلام. جز علامات. سخاوت نه. از خناس بودن. شفقت نه. اشفق من آباهیم و از مادرشم باید دل سوستر باشه. اصحاب باشه اشفق باشه از اون طرف از حد باشه اعبد باشه یه مرتبه باز اشجاعن باشه یعنی به هر وادی که سر می‌زنن باید سرآمد اون وادی باشه بعضی آخرش هم بیان میشه شاید اشاره کردم در از جراسات که ولی مثلا اجمل بودن جز علامت ها نیست لازم نیست امام معصوم اجمل ناس باشه ما نداریم یعنی تصریحی در روایات تا جایی که من دیدم چیزی به این انوان نداریم و گزارش های خارجی هم همین رو میکنه حکمتی هست در این که وجود نازنین آقا جوادل امه علیه السلام و سلام رنگ مبارک پوستشون سبزه باشه و این منافاتی با امامت ایشون نداره فر به بودن بدن مبارک امام واقع علیه السلام هم ضرری به امامت ایشون نداره ولو برای بعضی ها اینا سنگین میاد ابتدان بعضی که خیلی دوست دارند شخصیت با همون ذهنیتی که ساختن نه با روایات تشویر سازی بشه نه یا برای آشی روایات فرموده از ناس فرموده، از جهان ناس فرموده، اعبدان ناس فرموده، از هدان ناس رو فرموده، از شفق بودن از پدر مادر رو فرموده. خب ما همینا رو، همین چیزهایی که خودشون اون نکته رو دوباره یاد میکنم. ما درسته که امامت رو مثلا از یک مسیر دیگه بهش ممکنه برسیم با برهان لطف مثلا فرض کنیم. بهش برسیم. حالا ایج مناغشی هم نداشته باشیم درون برهان ولی بعد امام محسوم بعد از این که رسیدیم به امیران مؤمنین خب امیران مؤمنین رو شروع کنن درباره امام صحبت کردن امام شناسی صحبت کردن این لازم نیست حتی در بست توحید هم همینجوره ما به خدا رسیدیم حالا خدا خودش بیاد بگیم من اینجوریم خدا خودش بیاد بگیم من نسیه کارم من فوری مجازات نمی کنم. فوری فوریم پاداش نمی دم. من حلیمم صبورم من سنت املاء دارم من سنت استدراج دارم من سنت امحال و من مهلت میدم حتی به ظالم هم برای توبه هم برای اینکه گاهی میخوام ظلمش بیشتر باشه به اشد مجازات محکومش کنم تو دنیا نمیخوام انتقام بگیرم ازش دنیا سقف مجازاتش کوتاه است میخوام یه جوری مجازاتش کنم به اشد مجازات میخوام کله مان نزجت جلودون بدلنام جلودن ها اونجوری میخوام مجازات نه یه بار تو دنیا بسوزه تموم میشه دردش دیگه تموشه میره نه میخوام بارها رنج بکشه به خاطر جنایت بزرگی که کرده خب پس میشه بعد از رسیدن به توحید ولو از طریق عقلی زانو بزنیم بگیم حالا خدایی که من از طریق عقلی البنوتدل علالبانی رسیدم به اینکه خدایی هست از رسولت دارم خداشناسی سوال میکنم و رسول تو و قرآن تو داره خدا رو معرفی میکنه. خدا اینجوریه. جوریه، روش کارش. از لطف خدا صحبت میکنه. از اینکه به خدا خوشگمان باشید، از کرم خدا. خب خدا اینا رو خودش بگه، بگه من این جوری ام. بلا تشبیهال از باب تقریبه بزن. یه نفر بگه من رفتم یه کارخونه‌ای، می‌خواستم ببینم رئیسش کیه، بالاخره از رو اتاقش، از رو اینکه طرز صحبت بقیه باهاش، از رو جستش فهمیدم این رئیس ادراست. فهمیدی دیگه رئیس ادارش بعد حالا بری پیشش بگی ببین من رئیس ادارم اخلاقم اینجوری چهش کاری بعد خودش بعد از که متوجه شد اون رئیسه بگی ببین من رفتارم اینجوریه من قانونام اینه حالا قانوناش کنار بگی من اصلا خصوصیاتم اینجوری من همچی آدمیم هم. مثلا من حساسم رو سر وقت اومده کارمنده که سر وقت بیاد خیلی حساسم من رو مرخص رو وقت تلف کردن خب میگه من اینجوری هم دیگه خودش خودشو معرفی کنه نگیم نه آقا هنوز ما خدا باوریم اون رو از عقل گرفتیم صفات هم میخوام با عقل ثابت کنیم دیگه وقتی بهش رسیدی از خودش بپرس وقتی تو قدیر امیرالمومنین معرفی شد فهمیدی خلیفه بعد از دستور خدا امینان از خودش بپرس خب آقا شما چهجوری هستی تا او بگه که من به راههای آسمان داناترم تارم تا راههای تا او بفرماید که لوکوشفال قتا مزدت تو یقینا تا او بفرماید که عالم مثل گردود دست منه تا او بفرماید که من کجاها بودم من چه فضائلی داشتم یکی یکی خودشو معرفی کنه لازم نه ما اینا ما از امام باید خودمون برسیم به اینا اصلا بازجاست رسیدنی نیست ما از کجا میتونستیم بفهمیم حتی از استدلال این که امام باید افضل ناس باشه افضل افراد جامعه باشه این هم یه دیگه تو کتاب کلامی هم هست بگیم حدش چقده؟ افزالان ناس بودن یعنی اعلمان ناس همین سبکی کفایت میکنه نسبت به اینو افضل باشه فی نفس خیلی هم بالا نباشه باید نسبت به همون جامعه موجود افزالان ناس باشه خیلی وقتا ممکن سطح جامعه بیاد پایین افضل ناس خیلی هم قد و قبارش چیز نباشه باز سطح جامعه بره بالا افضل ناس سطحش بره بالا. سطح جمعه بیاد پایین. افضل ناس میاد. پایین. آیا افضل ناس که تو دلیل عقلیه مثلا بحث امامت بهش رسیدیم اینا رو دلالت داره؟ نه. او اصلا سنجشیه. اصلا اونه که علمش باید لدنی باشه. فقط میگه اشتباه نداشته باشه. در کجا اشتباه نداشته؟ در ابلاغ احکامه. اما این که اصلاً علمش باید مثل علم آصف ابن برخجا. تخت بلغش رو بتونه جابجا به کنه همچی علمی باشه علمی که قدرتی در کمتر از پرگ زدنی برای حرکتی یک تختی از شنگ ها فاصله ایجاد میکنه تازه این قطعه ای از علمش باشه قطره ای زبان پرندگان و بفهم پرنده ها اختراف خانوادگی دارن بیان پیش امام معصوم براشون رفع رو جو کنه گینا موالش بسار درجات بنابرای یه شخصی اومده میخواد عربی حرف بزنه با عزت، عزت با زبان خودش باشه حرف میزنه. ای بابامو خودمون کشتم مثلا میرف آقا خودمون که تو عراق میرن عربی صحبت کنن و این طرف با فارسی صحبت میکنه باهاشون. ما رفتیم اسم مثلا نمیدونم چی بود یاد گرفتیم برای پخت غذا که اینا چی میگن؟ چاشنی غذا بود. خوب که یاد گرفتیم رفتیم مثلا بگیم اینو میخوام فارسی رو اینو میخوای. بعد از امام معصوم تا یک سحنه شخص میاد عربی صحبت کنه و حضرت با زبون خودش باش تکلم میکنه خودتو به زحمت ننداست ای آقا مگه شما بلدین زبون ما رو مزمونه؟ دو که این پس حضرت فرق من با تو چیه؟ اگه من هم قرار باشه که خصوصیت مثل شما باشه که من به درد امامت نمیخورم امام رضا علیه السلام تو این روایت دارن مقام آسمانی امام معصوم رو با لطایفی که در بارشون است با تشبیه‌هایی که بخواد که امام آسمانی ماورائی شما چجوری می‌خوای یک موجود آسمانی زمینیه که دور و برت هم درست نمی‌بینی چجوری می‌خوای اختیار کنی و انتخاب کنی یه امام آسمانی که ملائکه در محضر او زانو زدند؟ تا عبادت یاد بگیرن معلم الملائکه تصویه و تعلیل و تحمید امامی که معلم الملائکه است زیادت جامعه کبیره با تمام مفاهیم متعالیش اینجا باید حضور پیدا کنه در بحث امام شناسی و در بحث امام زمان شناسی امام زمان شناسی چون شام جامعه هم هست رسم عدب هم همینی که اقتضای ادب هم همینه که ما امام شناسیمون اما باید بدونیم که امام زمان ما در این حال که مختدا هستند و سلطان هستند و علی الامر هستند و مطا هستند و تمام موجودات باید از ایشون کردن نه فقط انسان ها هرچند در اون رو فرمود که همه موجودات اطوان لنامن بنی آدم اینا خراب میکنن وگرنه بقیه موجودات طبعیتشون در مقابل ما از انسان ها بیشتره اینا برای خودشون نشابه واسکردن و قیافه گرفتن وگرنه نه بقیه موجودات فهمیدن در مقابل ما چقدر زلیلن و باید اطاعت مرس اطوان لنا خب این جنبه ها در امام زمان علیه السلام هم به عنوان ولی امر ولی عصر امام متا عاجب همه اینا محفوظه و این جنبه هایی که نمونهاشو اشاره کردیم در وجود نازنین حضرت اینا هم همش هست یعنی ما میتونیم هم نگاه ارباب و رعایتی داشته باشیم یا هم کلا هم میتونیم نگاه فرزند و پدری داشته باشیم یعنی وقتی می با حضرت صحبت کنیم هیچ اشکالی نداره که بگیم یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین چون امام رضامون فرمودن الامام الوادل والد الشافعی اگه وقتی اونست گرفتیم با امام معصوم هیچ اشکالی نداره چون فرمود الامام عدیس و رفیق یک احساس رفاقت در این سمیمیتی که هست یک احساس حیبت امام محسوم و بودن و ارباب بودن ایشون هم باید موج بزنیم خب این بحث امام شناسیه به این سبکی تو کلام امام صادق علیه السلام با همون جمله معروف امام زمان شناسی رو فراتر از اینی که اگر این فرمایش نبود هیچ کس جرعت نمی اینجور تعبیر کنه بین المعصومین سلاموندار چون خودشون طبق نقل فرمودن بمید. چه کسی خاتم الاوسیار که حجت خدا امام صادق علیه السلام تعبیر خدمتو نسبت به او و توی یک روز و یک ساعت و یک هفته و یک ماه. ایام حیاتی. خب وقتی میخوایم امام زمان شناس باشیم اون بحث بحثای کلامی اینا رو ثابت نمی کنه. که حجت خدایی مثل امام صادق علیه السلام آرزوی خدمت یکی از فرزندانش از نسل مبارک خودش به نام حضرت بقییت الله ربا و رو در سر می‌پرورانند اونم نه یک روز و دو روز ایام حیاتی یعنی طلبه ها و علما و فزلا من امام صادق ایام حیاتی میخوام خدمت امام زمان بکنم اینو شغل خودم قرار بدم خب این میشه امام زمان شناسی در کلام نور همین یک فضیلت برای امام زمان آنستان کافی بود همین یک فضیلت در کلام امام یعنی هیچ فضیلت دیگری در روایات بیان نمی شد نسبت وجود دو نازنین حضرت شد همین کلام امام صادق کافی بود دریایی از فضائل و کمالات و مناقب و معرفی جایگاهه از رد توی همین کلام امام صادق علیه السلام موج مزنیم. از اون طرف استقاست. یعنی در این این فضا حالا خوبه به رواید اشاره بکنیم. یعنی این جور امام زمان؟ چون الان بست امام. ابت همه بیت قریب بودن. ولی این تعابیر رو چون نداریم. و اتفاق هم نیفتاده ظاهرا در مورد سایر اهل بیت. یه مرتبه اون آقایی که جور جایگاهی داره هوت ترید هو شرید هوت وحید هوت فرید این آقایی که حالا ظاهر کلمه تریده رانده شده یعنی ای که در واقع او شده از امام زمانش امام زمان که عزیز همیشه هیچ وقت از عزتش زرهی هسته نمیشه ولی این تعابیر هسته ما در این اون عظمت به این قربت هم باید فکر کنیم تو امام زمان شناسی ما تو این زاویه هم خلال پیدا نکنه. در این اون عظمت و مخدومیتی که نسبت به حجت خدا در کلام خود این آقا یعنی امام صادقه منعکس میشه در این اون جایگاه ترید و شرید و وحید و غریب و فرید هم هست. تنهاست با اینکه نیازی به یار نداره ولی او تریده انگار او رو ترد کردن یعنی این جامعه از او قافل شده، جامعه ایمانی او رو خواسته یا ناخداگاه رانده و او غریب مونده یعنی غریب بودن نه اینکه جامعه اومده رسما. الان خیلی از وقتا همین رفاقای خودمون توی مجلس می احساس قربت میکنند بین جمعیت احساس قربت میکنند خیلی وقتا برای خود شما هم پیش اومده در یک جمعیتی که هماهنگ و هم دل نباشین احساس قربت میکنین در میان جمع سبک دینداری که ماها از روایات میفهمیم و جرعت هم نمیکنیم خیلی هاشو اصلا در جامعه امت کنیم یعنی اصلا ظرفیتش نیست ایجور احساس قربت این نوع دینداریه حالا نسبت به حضرت هم ما باید اینا رو با هم جمع کنیم آقایی که دستگیر عالمه آقایی که مساق اندانمرزل مرزکمه به فکر ماها هست دلسوزیش برای ما از پدر و مادر بیشتره در این حال خودش غریب و خودش تنها و خودش به براه دعای ماست توی دعای استقیبت بعضی از این صفات رو حدود 100 تا صفت حالا فقط اشاره می کنم دیگه دعای استقیبت که به املاع امری از صفرهای خاص حضرت صفرهای عربعه الامدی و ابنه سقتان کتابهو کتابی چون املاع ایشونه دعای اصدقیبت به نظرم دعای افتتام هم همین جودیه حالا بعضی جا اسناد به خود حضرت مرحوم مدرسی دادن ولی احتمالا تسامحی باشه اونم املاه همین بزرگواره اون کسیه که دعایت در موردش می کتابهو کتابی نوشته او نوشته منه تزمین شده از طرف حضرت و اعتبار بخشیده شده دعای اصدقیبت خیلی دعای مهم و راهگشا است و منشور انتظار است. ما اینجوری تعبیر میکنیم که منشور چشم انتظاری دایره غیبت. و باید خیلی دقت کن. یکی از زوایای معرفیه دایره غیبت اینه که حدود 100 تا صفت برای امام زمان از توش میشه استخراج کرد. خب اینا میشه امام زمان شناسی. با یک نگاهه وسیع از نگاه رایجه در کتب اعتقادی و ضرورت این تکمیل تا امام معصوم به جایگاه اصلی خودش ارتقا پیدا کنه و اون اتفاقی که قراره در نقشه الهی نسبت به این امام و رعیت او اتفاق بیفته اون اتفاق بیفته یعنی رعیت او عاشق امامش بشه در کتب کلامی نگفتن که رعیت باید عاشق امام باشه اصلا میگن لازم نیست اصلا شرط نیست اصلا کی گفته باید نه اون درست جامعه اداره کنه اصلا با اون نگاه صرف عقلی ما تو بس مرجعیت هم به مشکل برمیخوریم سیر اغلا در مرجع حلال زاده بودن شرط نمی کن سیر در مرجع تشیعه هم شد. یه مسئله شیعه رو خوب بلد باشه ولو کافر باشه. از نظر سیره اقل بعد ما میامیم یه جوری این سیره اقل رو با تفسره هایی حالا چرا نباید زن باشه؟ بعد جراش رو به زور با یک زن بنابرای استطار مرجعیت با استطاره او دنافی داره با اینجور تغریرها مثلا میخوام قیدش بزنیم که باید رجل باشه. ولی سیره عقلا خیلی جاها بی میره بی میره و باید تصریح بشه این سیره با امضای معصوم که در کتب اصولم میگن میگن ما میگیم باید به امضای معصوم برسه اگه سیره اعتباری نداره که اون در واقع میشه حجیت تقدیر معصوم نه حجیت سیره و اون نیازی به سیرام نداره حالا فقط یه جمله عرض کنم اون یک شخص واحدم باشه حضرت حرکتشو امضا کنن کافیه که اون حرکت و شرکت درستی ولو یک نفر باشه اون امضای معصوم و تقدیر معصومه به اسم سیره داره تموم میشه نقشی نداره چون اصلا عقل نباید پاشو از گلیم خودش دراستر کنه عقل در احکام در احکام از ما جایگاهی نداره دین الله لایصاب و بلغول با اینکه در معارف اصلا کتاب عقل و جل داریم ما اولین کتاب کافی اولین ابوابش کتاب العقل واجب عقل چه جایگاه رفیعی داره اصلا بدون عقل وحش هم نمیشه اگه عقلی نباشه عقل مثل چشم و باه مثل چراغ اگه کسی کور باشه چراغ هم نمبینه که چراغ وحی و باید با چشم عقل دید منتها باید طبقه میزان وحی عقل حرکت کنه چون عقل خودش میفهمه که قدش کوتاست و خیلی چیزها رو نمیفهمه عقل سالم اینجوری میفهمه که نمیفهمه خیلی چیزها رو میفهمه از برده و خارجه لذا میرسه سراغ وحی زانو میزنه در محضر وحی عقل سالم اینجوریه میفهمه نقصان خودش و کوتاهی قدیشو میره در محضر وحی می نشینه و عقل و وحی چشمه اینجا با هم تعامل دارن چشمی نباشه چراقی دیده نمیشه چراقی هم نباشه چشمی جایی رو نمیبینه در ظلمت چشم جایی رو نمیبینه تعامل دارن عقل و وحی با هم تعامل دارن تا یک معرفت ایمانی شکل میگید خب این حالا تردن دلباب بود شناسی با تمام مظاهرش باید به عنوان درسنامه امامت مطرح بشه حتی از مهربانی امام معصوم بر صحبت ببین اگه علامات الامام معرفیش کنید خس فقط میگیم فرمودن انان هم رضا لهم رضا کن علامت امام نگفتن بعد میگیم آقا اصلا تصریح شده توی این باید که علامات الامام رو دارن آقا علی ابن موسر رضا میشمرن و میرسن به این که او اشفق باید باشه بر امتش از پدر و مادرش باید مهربون تر باشه حتما حکمتی هست در این علامات که اینجوری تقریر میشه و اینجوری بیان میشه نه که بگیم نه اینا مثلا حالا صفات راجحه هست اینا لازم نیست با نفی اینا نمیشه ظاهر این تعابید اینه که با نفی اینا میتونیم بگیم اون کسی که بیاتفه است، اون کسی که نسبت به درد شیعش بیخیاله اون نمیتونه امام باشه امام معصوم این جوریه. در عین اون عظمتی که داره این مهربونی‌ها را هم داره این خصوصیات را باید داشته باشه خب ارزم تمام شام جمعه است و خواستیم نومی از حضرت هم در میان باشه ان شاء دایفته تا هم که خوندن که بسیار بجاست در شب‌های رمضان توثل به حضرت دیگه در دعای افتتاح هم دو جا ما شکواییه داریم شکوایی الالله نه الله که عرض کردیم بارها شکوایی الالله نه تنها بد نیست بلکه مطلوب هم هست من الله از خدا کسی نباید شاکی باشه ولی به خدا شکایت بکنه هیچ شکایت نداره اللهم اینا نشکو الیک تو دعای افتتاح هست تو دعای از قیبت هم دو جا حالا من بیشتر یادم نمیاد. دو جا داریم از ما من اینا نشکره. با یک مضمون تقریبا واحد. فقد نبی اینا، غیبت تولی اینا، شدت زمان اینا، که عدو و قلت عدد اینا. تظاهر زمان اینا. تقریبا مضمون واحد خب این شکواهی یعنی مردم بدونید. بعد بختیم. بعد زجه بزنیم. بعد ناله بزنیم. باید به خدا بگیم خدا ما بیچاره این بیچاره گیر رو باید در, قبل... در قالب در یک شکوایه در خونه خدا مطرح کنیم. اللهم اعظم البلا هم تو همین ردیف قرار میگیره. اللهم من نشکو الیک. خدا ما بیچاره ما نه پیامبر رو دیدیم نه حجت خدا رو دیدیم. ما کمیم همه بر علیه ما هستن همه بر ما دارن نقشه میکشن. زمانه با ما سر جنگ داره با ما سازگار نیست تا اینشالله انایتی بشه و خدا حکمتش اقتضا کنه ظهور و اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه والآن و الان <تصفيق> و اهلک اعداء هم منم ای در هر دو نگاه باشه هم خدمت حضرت عرش کنیم که یا ایه العظیم مسن نو بهلن شما عزیزی شما پادشاهی ما بیچاره‌ایم ما و گرفتاریم واجنا به بذاتم مزجا دستمون خالیه خالی فعو فلن الكاي وتصدق علينا و باز با نگاهی که متخص از زبایاته یا ابانا استغفر لنا ظنوبنا إننا كنا خاطين ما تتصبر في انتظارك أيها المحي الشريع فنهض فما أبغض تحمل غير حشام جزع والصيف أن به شفاء قلوب شيعتكل وجع امیر این جمله اثران تجی و فجی اتون به آماده من تلک الفجی منتظر مصیبت جنسوس تری هستی آقا برای زهودت از این جنسوس تر میخوای آقا حیثل حسین على الثراغ خيل عداد تحند ظلوح قبلشم رفته سراغ ابی عبدالله و رضیعه به دم الورید مخلبان فطلب رضیع. بیا از دست جدد ابی عبدالله بگیر یبن الاسم جانسوز ترین مصیبت آشورا اشیر گرفتن علی اصقر بود. خیلی سخت بود این صحنه. یه شب این قافله از مدینه بیرون آمد. الانم ایامیه که قافله در مکه مکرمه در جوار بیت الهی. تا اون روزی که به یوم ترویه محمل ببستند، یه شبیه از مدینه بیرون آمد یه روزی هم به مدینه برگشت قافله اون شبیه که از مدینه بیرون رفتند دل نمی کندن از مدینه جدشون از شهر پیغمبر از کوچه بنی هاشم محله بنی هاشم دل نمی کندن. ولی روزی که برگشتند زبانشون این بود مدینه تو جد نالا تقبلی اینا مدینه ما رو قبول نکن مگه چی شده؟ مدینه ما با حسین رفتیم بی حسین برگشتیم ما رو قبول نکن ما رو راه نده فقط یه جمله ارز کنم مدینه خبر شهادت رو داشت این جور نبود که لحظه برگشتن خبردار شده باشیم، ولی مدینه میدونست این قافله بی حسین برمیگرده بی عبل فض برمیگرده بی علی اکبر برمیگرده بی قاسم ابن الحسن دوتا جای خالی رو مدینه احتمال نمیداد در این غافله با اینکه خبر شهادت ها رو داشت ولی مدینه انتظار نداشت وقتی سراغ رباب مادر علی اسقر رو بگیره بهش بگن رباب کربلا مانده رباب با بچه شیرخاره تک و تنها کربلا مانده کار کنه نه رو تک و نیست بچه شو از شیر گرفته رو روز آشورا بچه یه رو روز امام حسین از شیر گرفتن با تیر سشابه یه جای خالی دیگرم مدینه انتظار نداشت دختران مدینه انتظار نداشتند. وقتی سراغ رقیه رو, رو می گیرن شنیدیم باباش به شهادت رسید دختران مدینه انتظار داشتند بگن رقیه اونجا تو این خیمه است بریم پیشش هر چی نوازشش کنیم بگین رقیه عیبی نداره بابات به شهادت رسیده ولی امها ها کنارد محله بنی آشم در استقبال شما آماده است برگردین در شهر امن و امان مدینه رقه بر نگشته رقه کجاست رقعی گوشه خرابه شام جا منده. عجب رقه تک و تنها در شهر شام منده. شهر غریبه شهر دشمنان امیر المامنی. رقیه شبانه بابا گرفته بود خواب بابا رو دیده بود دختران مدینه سر بریده بابا شبردن تو و نس بودند و یا رب الحسین به حق الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه یا رب فاطمه به حق فاطمه اش به صدر فاطمه به ظهور الحجه یا رب الحجه به اقل حجه به صدر الحجه به ظهور الحجه اسم بی بی اومدین دوبهی تیرم بخونم آز مخواهم اگر می سرتا سر همه دردی می آمد. اگر می دید رخسار از غمش زردیم می آمد اگر رنج یتیمی را همه احساس می کردیم، اگر مثل را غیه ناله می آمد به صغیرت الحسین استجب دعواتنا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله, يا الله. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناس فرج عنه فرج عن عاجلاً قريباً وفرج عن جميع شيعته ومحبي حيهم وميتهم سيما المنظورين منهم بجاه محمد وآله الطاهرين